معنای حقیقی عشق ربازارتارس از میان در وارد اتاق شد کنار تخت خوابی استاد و مدت درازی به پایین خیره شد بالاخره به طرف سندلی رفت و نشست چشمانش می و در نور ملایم اتاق تلعلوی تاریکی داشت او در سکوت و از وجد میخندید خندید ربازارتارس عشق جریان عمیق حیات است. ذات هر چیزی در هر طبقه ای از هستی بر محور عشق قائم است. اما نه عشقی که ما در این جهان می شناسیم حتی عشقی هم نیست که ما از برای فیض الهی می جوییم این تنها توهمی از ساخته های ذهن است. گفتند که آن عشق، برترین است، اما این چنین نیست. عشق خدایی یا عشق به همه بالاترین عشق در کیهان نیست؟ پال این سخن از تو مرا به عجب می اندازد استاد پس بالاترین عشق کیهان کدام است؟ ربادار طرز. بسیاری از کسانی که به این زمین آمدند تصویری از خدا باقی گذاشتند تا نیایش شود در تعین واقعیت نر که آنچه از درون هر سازمان زندهای در این جهان زنده جریان دارد نه یک قانون است نه یک اصل نه یک بشر است و نه یک وجود یک جویبار حیات هم نیست اینها همه مجردند چون در یک تصویر محدود و صورت محدود قابل تصور هستند ما از آن به ژرفا باز میگردیم ما به سرچشمه ازلی جریان حیات اشاره می‌کنیم که درون تمامی طبقات هستی حاکم و برقرار است از درون این جریان جویبار عظیم و بیپایانی از اتم‌ها، مولکول‌ها و پروتونها صادر می‌شوند که قماش نخستین آگاهی را تأمین می‌کنند این منشأ کل است مطلق نامی که ما به این مقام الهی می‌دهیم سوب ماد است نه نامی دارد نه شکل مطلوبی فرمانروای یگانه افلاک و کیهان هاست آن مقام یک که اتم های زنده ای را که در سراسر میلیونها جهان در حرکتند تحت کنترل دارد و به آنها حیات میبخشد. همه به اختیار این روح عظیم صدای آن تنهی زنده یا کلام الهی است کالودش نور جهان هاست سپس به این سوال باز میگردیم گردیم که ما در وضعیت انسانی به چه کسی یا چه چیزی عشق می برزیم. آیا ما با تمام وجود به آن روح عظیم عشق می برسیم به بگو بگویم که آری اما نمیتوانیم آن را در حیعت آلمگیرش دوست بداریم زیرا حیبت آن بر مخیلهی کسانی که دورتر از طبقه اسیری سفر نکرده باشند فشاری بیش از حد میاندازد. حتی پیشتازان طبقه ذهنی نیز قادر به درک آن صورت صورت نیستند. رؤیت آن مقام موجب اختلال در ذهنی می‌شود که در مفاهیم کیهانی علوم معنوی پرورش کافی نیافته باشد. بنابراین می باید آن چرا که مورد عشق است با ظرافت بیشتری مشخص کنیم لازم است دامنه فهم خود را آنقدر دقیق کنیم که تصور ذهنی کاملی از دو جنبه اصلی خدا بدست آوریم این دو عبارتند از نور و صوت این نمود دو وجهی از آن مقام متعال در بالاترین ترکیب خود در شکل یک سفیر زنده به ظهور می‌رسد. در اینجا مکس می می‌کنم تا یادآور شوم همه معلمین حقیقت از زمره سفیران روح نیستند. یک خط سیر تکاملی وجود دارد که نزووند استادی طی می‌شود. اساتید بعد از مرحله استادی به مرحله قدیسی و سپس به صورتهایی از قبیل فرشتگان الهی یا سایر ارواح بهشتی طریق تکامل را می پیماید. آنها درون کالبد کیهانی خدا ممزوج گشته و در حضور وی باقی خواهند ماند. این روحها می توانند سفیر روح شوند تا به جریان الهی حیات بازگشت نموده و در قالب بالاترین شکل آگاهی به فعالیت در جهانهای مخلوق بپردازند. در این صورت این جرقه الهی در وضعیت آگاهی یک موجود زنده هوشمند در یکی از سیارات جهان فیزیکی چه در این کره و چه در سایر سیارات نمود پیدا کند. برای اطلاع تو میگویم که استادانی که در روند پرورشی خود به فارغ و تحصیلی میرسند یا همان دسته ای که اگر میل داشته باشی میتوانی سفیران روح خطاوشان کنی؟ اغلب به سیارات دیگری مثل کلاریون، زهره یا سیاراتی که روحهای کمالیافته تری در آنها زیست میکنند گسیل گشته و در انجام امور خدا در سراسر جهانهای کیهانی مساعدت میکنند از این دیدگاه هسته میتوانی وجود پدیده های چون باش خوابهای پرنده ای را که از ابعادی ماورای معیارهای فیزیکی به دایره رؤیت مادی نفوذ میکنند توجیه کنیم. نور و صوت عناصر اساسی در جوهره جهانبینی کنکار، به منظور سهولت درک توده های مردمی که قوای تخیلشان در صورتهای ابتدایی عمل میکند در یک حیعت واحد به نام خدا ترسیم شده است آنچه ما در این قدم از پیشرفت معنوی خود دان عشق میورزیم همین مقام است. آن را خدا بخوان یا بدان بگو واقعیت سوگماد یا هر ای که برای سهولت تعین هویت آن مقام لایتناهی میتوانی به کار گیدی نور ناقل کلمه است. نور کلمه را به تصاویر محدود و مجزایی می میکند که به آسانی معنای آن را منتقل سازد این را رباتو میگویم که نور انعکاس اطوم های کالبد کیهانی خدا و صوت حرکت این اطوم ها در فضای لایتناهی است جریان حرکت پیوسته و عالمگیر این اطوم ها که از درون مقام متعال صادر میشوند، در وضعیت یگانه و در قالب نیرویی که آن را مثبت یا جریان عشق مینامیم، همه ی عوالم و کائنات را به یک دیگر از یک سو و به خدا از سوی دیگر پیوند می دهد. اما پس از عبور از مرز طیف ارتاشات جهانهای تحتانی پایین از بخش اعظم دوم هستی به دو جویبار تجزیه می مثبت و منفی زیرا وجود این قطبین برای حفظ تعادل در جهانهای پایین ضرورت دارد جستجوگر باید به جستجوی استاد تجسم تجسم مقام متعال یا یک ساتگرو براید. کسی که به قلده دومین بخش اعظم هستی دست یافته باشد. آنگاه کمک او را طلب نموده، در را از این راهنمایان تعالی در یافته دریافت دارد که لحظه وقف کردن خود به عشق خدا، و چگونگی عشق ورزیدن به خدا را به دانها بیاموزد اکنون ما این را دانستیم که به چه چیزی عشق ببرزیم و آین عشق ورزیدن را هم آموختیم اما چگونه باید زندگی کنیم که بیانگر این عشق باشد برای مراقبت از زندگی به دانشی نیاز داریم که مسئولیت ما را از گذن نیروی منفی زمانت نماید این دانش حاصل به تعادل رسانیدن رفتار و روحیه ما در رابطه با عشق می باشد از آنجا که ما دائمان در جریان دوگانه حیات زیست می کنیم می باید بیاموزیم چگونه خود را در میان این دو قطب متضاد در تعادل حفظ کنیم بشر نمی تواند از نیروهای منفی گریز بزند نه از نیروهای مثبت. چه هر دو در این جهان لازمه بقا میباشند می باشند بنابراین مجبور است تلاش کند در طریق میانه به دور از تظاهرات افراتی به طور محض بیطرفانه مسیر اعتدال در پیش گیرد حد این اعتدال میباید همواره مورد نظارت و تنظیم قرار داشته باشد تعالیم استادان بزرگ جهان از اینجا فرچش میگرفتند این بزرگان در مسلک و بینش خود تصف میبردیدند نه ناتوان و سوست انصر بودند بلکه در دامان اراده الهی استوار هم زعفهای خود را میدیدند، هم هم های خیش را انبار نیک و را در زندگی خود مورد تخمین و تعدیل قرار داده و برای خیش جایگاه متعادلی در بینابین های جریانهای دوگانه آگاهی که از درون همه عالم آلم است مستقر سازند این جهان ها و جریان ها به همان تعبیر جهان بیرون و درون یا واقعیت و ذهنیات نیز منظور شدند. یعنی حفظ تعادل بین تجربیات و دریافتها و آموزش های درون و برون ضروری است. بودا در آموزش های خود این چی به را تعلیم میداد. او میگفت: در مسیر میانه سفر کن. حالا در هین سفر در این مسیر میانه دفعتا بشر به اتمی بیطرف از خود گذشته و فارغ از هویت جهان خاکی بدل می شود که هوش خالص است و دیگر خودش نیست آگاهی او دیگر مانند یک آبشار خشمالود از جویبار منفیگری و منفیگرایی نیست بلکه در تعادل خالص با سوی مثبت همچون رودخانه ای شفاف و آرام پیش می رود. دیگر از عبارات تحریک کننده یا حراسناکی که تا از این ذهن او را در تسخیر داشتند خبری نیست. و به جای آن افکاری وسیع آرامش بخش و روحانگیز نقش می بندد که سوار بر انواج رودخانه عظیم آگاهی جرون همچون قایقی شاهانه می خرامد. او درون خود به عنوان پیرو یک طریق معنوی توچه معنگنی از حکمت و درایت الهی را ردیابی نمی کند اما احساس خردمندی با تجربیاتش عجین می شود آن هم در تجلی یک عامل مختار که ارواب زندگی فیش است نه نیازمندی که برده این دنیاست. این رفتار و روحیه ی که برای متعادل ساختن ذهن به کار می باید مدام به مراقبه گو داشته شود تا بتوان بر اساس جنبه های دوگانه تجلی مقام متعال، یعنی نور و صوت جایگاه محکمی بنا کرد که به ما نشان می دهد عشق را به کجا معطوف سازیم ترکیب همساز و واحدی که از امتزاج این دو انصال نخستین پرید می آید در غالب سفیر روح به تجلی کشیده می شود پس به استاد عشق بورز من صرفاً مطر و نمادی از بخشی از آن هستی متعال هستم و عشق برزیدن به استاد درون همانا مرخورداری از والاترین صورت عشق است آنگاه که آدمی به اینجا رسید دیگر در زندان منطیگری محبوس نیست بلکه به بیرون از آن روش کرده و به جریان مثبت زندگی می پیوندد او حیاتش را زندگی درونش را و آگاهیش را نتیه اقامتش در این جهان خاکی به این ترتیب به تعادل میرساند و اما من معنای حقیقی عشق را برایت گفتم و اینکه آدمی به چه منشعی می باید عشق بورزد آیا منظورم روشن است؟